الحمد <سؤال> لله رب الله <سؤال> علیه الله مرمون استاد با اول خودشون امود رو با عنوان مقدم محشن شدن که بحث به وعال اتطابیشون باشه در مراجعه آقایان سهله در بشه در اولی که شدن و این بحث از شدارن در مواقع ایشان آمده اخصاص به این مورد حالا با اختلاف و برده اتحابیش. متعرض به مسئله اصولی شدن و بعدم تقسیم از پرحاس اصول که حدثشون واضحه میخوان بگن بحث به اصطلاح اصول عملی جاش و جایگاهش در اصول کجاست در بیان جایگاه ایشان متصدی مواقع سه اصول شد ایشان مسائل اصول رو به پنج که اینطور نوشتن تقسیل میکنی اصلا این ظاهرن تقسیم باشه به قول پیشنهادی ایشان مقترح ایشان اتقراح ایشان ولی در کتاب خودشون در همین دوره اصولشون این همون کتاب های متعارف قبلی که فایین ها بحث کنن پیشنهادشون این هست که حرفاس اصول به این ترکیب بشه بخش اول رو تعبیرشون این بود که ما وقتی اصول ناهلل حکم شرعی به قطع الوجدانی تعبیر ایشان این و این رو از کرده، البته چون قسم اول اینا نمی‌گویند که آیا مرادشون این است که ما اگر تنظیم اصول کردیم این رو بخش اول قرار بدیم اصل بحث اول ما اصول قاعده حکم شرعی نمی‌فهمم مراد یا مراد اینه که برای تقسیمات باشه حالا جایگاه شد که بحث سبون بذاریم چارون بذاریم به اصطلاح آقایون در تنظیم کتاب غیر از تنظیم علمه نظرش به تنظیم علم باشه حالا یه حاله ایشون به عنوان قسم اول و مرادشون از اونی که موجب به قطعه به حکم قطعه به به حکم شه مرادشون همون اصطلاح ملازمات حقیلی به تعبیری شن هست کردن دیروز عبارتی ایشون رو ملازمات رو یک قسم جزاگانه میگونن در بیانشون اینجا سه تا رو بردن مسئله ایزد رو مسئله مقدمه و مسئله نه لیکن خب تو کد بحث و اصولیشون بحث این که نهل روز بر فساد میکنه داره که نهل روز بر یعنی معروف در زبان اینها چهار تا مسئله جزء ملازمات ده. اما ایشون اینجا سه تا روز خود اینشون هم روز از این ملازمات اسمش اینجا نبوده دلالت نه و فساد از کردم که اون وقت ایشون این یک دست میگونم و میگن چون اگر ما این ملازمه ثابت باشه، از مسئله حجوبیشه حجوب مقدمه شاهرمت زدش رو میفهمیم و ایشون میفهمیم که این مسائل رو با. در حیقت مربوطه به لحظم نیست که میشه بذاریم مدالی بحث از مدالی یا بحث الاسطلقامات حقیق و عالی شمع و که اصوری این در تفاق برای سالفاد هم موارد مواد درست نیست از کردیم که اونجایی که ما میدونیم در حوزه های ما مخصوصاً چون کتاب مشهور کتاب ما آلم بوده قبلشان هم علام علامه قدس الله سر. دیگه ما قبل از اصول علامه مثلا این نحوی بحث اصولی اینجوری نداریم علامه اولین کسی است که همون تنظیم علی که اصول عامه بود ایشون آوردن و چند تا هم دارن کتاب که هم دوره ماننده یعنی مثلا کتاب مقدمه شما بهش میگن مقدمه در اصطلاح کتاب ابتداری مبادئ علوم اصول و علم اصول رو مقدمه میشه کتاب مقدماتی مقدمان مقدماتی بعدا کتاب مطرسیتون تحضیح کتاب نهایی شنن نهایتون و علم رسول علامه کتاب های متعدد داره بکنه که در قوضه های ما بیشتر جا افتاد چون این معدار بحثای علامه تو ها داره که به بحث ما نمیخورد کتاب معالم بود کتاب معالم طبعا اولین است که به همین حسول متعاره در قوضه های ما جا افتاد و در کتاب معالم و من جاه من بعد مثلا کتابهی در حوزه متعارف بود اول قوانین بود بعد از معالم بعد هم فصول بود هم آخر انتی خب فرصه مثلا در این کتاب مواحث استلزامات و قول آنیان تو مواحث الفاظ بود تو مواحث عوامر بود کتاب توی عوامر هم بودونه فقط الفاظ نبود مواحث عوامر بود دقیق می این که بعضها از دهی از غلمای ما به فکر اخسنه که این موافث مربوط به لفظ نیست که همه جمعای خویی میفرمه چرا از اصولی این از اصولی این همه یکی کردم از معالم به برد چون مرموهای خویی کاملن واضحه که کتب و اصول سنت یا خوابی جد این دائرهی ای که ارز کردم ملازه نفرمون در این کتب بله باست همچوردیشون فرموند در این این بحث ها توی و از کردیم تا که ما میدونیم در علمای ما اولیتی تیه این پیشنه ها داد که این بحث کلن جدا بشه که بحث خاصی بشه مرحوم آیه آشانسن اسمانی ایشان مرحوم آیه کنکانی که در اصول هم همین کاری کرده اشون مصردمان تقلیه رو جدا کرده اونم از مرحوم آیه اسمانی گرفته مرحوم آیه استادم پیشنه ها بشه اینجا اینه که این بحث جدا بشه. یعنی که انمایه بحث در اصول جدا بشه که درگاه دویجه در ستانی روشتن رو پاکن شهار که چهار مسئله در او گفته بشه یک فصل جداگانه ای با چهار مسئله یکی مسئله مقدمه باشه یکی مسئله زد یکی مسئله اجتماعان نه یکی مسئله زلاطنه این برفساد چهار مسئله گفته بشه و میعیار جداگیشن این باشه که این ارحاسیست که یو ال الالپرس اله الال ب چون اگر ملازم ثابت شد خط فیضا نکنیم بوجود مقدمه یا حکمت زیر این خلاصه ای این قسمه اول ایشان که ظاهرش اینطوره. طوره از کنم که ما دیروز مواحثی رو در اینجا در و در کلام ایشان عرض کردیم اولاً ایشون در این بحثی که اینجا با دوستان جوز عرض کردیم در برای اشاره به وقت دیروز ایشون مقدمه ای اصول را چی گلی می‌بینیم. یه بارشون راستم. خیلی و اما ترتیب اصول این که ما این چهار تا مسئله رو یا سه تا مسئله رو یک بخش جداگانه قرار بودیم از اصول خیلی به نظر علمی و دقیق نمیاد. توزیعش دیگه کردیم. ما در حیث از کتب اصولی اهل سنت و حتی زیدیه قضاوین در شیعه نگم، اینا اصولا یک بحثی رو درباره باره تکلیف مطرح کردن حقوق بحثی رو مطرح کردن که ما حالا به جایی اون آقایی که میگن تکلیف یا شتاب یا حقیقت تکلیف میگیم بحث اعتبارات قانونی که بحث کوروی یک بحث از اصول رو در اعتبارات قانونی قرار بودیم حقیقت اعتبار قانونی حقیقت بکن شرگی احسام اعتبارات قانونی تقسیم اعتبارات و قانونی به احکام تکریفی و احکام وزی یا احکام ارشادی احکام عقلی احکام تعبودی توسطی یه تقسیماتی که حقیقت وجود حقیقت استحباد حقیقت مثلا کراهن حقیقت اعباهه احسام اعباهه ما یه بحثی به کلیه یه حکم و احکام شرعی احکام قانونی اعتبارت و آنون قرار داریم که یکی از اون بحثاش هم بین اعتبارت و آنون این ترابط به نهر تلازم باشه مثل مسئله مقدمه واجب یا به نهر تاانود باشه چون فرق این دو تا مسئله در تا... تلازم و تاانود دیگه مثلا اگه او برو نام بخر معنیش اینه که بازار برو اون روزو ملادونه نداره یا معنی این که برونان گفت که نماز نخوند چون که نماز خون نیست که بازار بره برونان گفت تو شایده نماز نخوند این به خاطر تعانوسه یا تلازم یا تعانوس را یه اون بحثی نگیرید نه اهل رو ما توی دیگه ما کردیم ما فرانت کردیم حالا ایشون نوردن خیلی من یواظون بحث نمیشه پس بنابراین اصولا ائذه از اصولیین یک بخش ای رو مطرح کردن که این بحثه تضاد دو شمال نحی زیر مجموعه اون بحث میشه اون بحث ترابطه بین اعتبارات قانونی و حقیقت اعتبارات قانونی و اصلا این که میگن آیا عوامل تعلق و توایر میگیره اوامر تعلق و افراد میگیره اصلا اون بحث مرادشون چیه اصلا آقای کوئین رویشتن مراد از اون بحث نکاره کلیه طبیعی در خارج رو شده یعنی میشه که اصل اینکه اصول عوام طلب و توای چیزی از دید اصول قبلیشون مطرح کردن بحث اینکه های کلیه طبیعی وجود داره نه که اون مطلب خودشه همه هم بحث تجربی به صورت غیر از تجربی خود اون بحث اون رو رفت دادن به اینکه آیا عوام طلب و توای میگه مثلا این بحث ها یه مجموعه بحثی که اینا به تو کی در بخش ظواهر و اگر می آوردن که بخش قضایی خداوندشان شد که سایه به بلحز نداره ارتباطات قانونی ترابط ارتباطات قانونی اولین ترابط قانونی متعلق به توای اصلا معنی این عبارات یعنی چی متعلق به توای متعلق بحث چون ما میدونیم این امر بدی اصلا چرا اونا بحث کردن سایه عوام طلب توای جاری یا ارتباط قانونی طلب طلب توای چون ما میدونیم هرطه هم باید عمر به طبیعت بخوره عمر ممکن نیست شخصی به شخصی بخوره به امکان نداره اصلا امکان نداره چون شیع مالاییت لا لایجر داره و تشخصش رو وجوده وجود پیدا کرده هم رو سر که شما جوزه ایترین هم را تصور رو تصور بکنه میگه در این لرزه پشتون این در رو باز کنه شما این جوزه در میخو چون اونی که متعلق امره در باز کردن در باز کردن زنان کبیز چون اون در باز کردن خارجی که به شلوق امرو نمیگیره پس این چیه بحثی کردن که مرموم استاد با جلالت شنش در اصول ارجاع داده این معنی میشه گیر داشتن که همچه ارجاعی داده <تصفيق> دا دا که آیا امامل تلام و توایع داره و از وقت مرموم استاد دو احتمال داره که که ارز کردن یه کتاب بازی که بسیار بی که آیا امرو نعنی تعلق, تعلق به فرد داری یعنی چی؟ تعلق به فرد یعنی چی؟ ما توضیی دادیم که تمام این احتمالات دیده این کتبا مدید ایسا خیلو باقیه این مدرد نیست حالا من باید اون بحث میشم کنی این بحثه تابران مدرد کردیم حالا این که ما از این سنس بحثه که بر میگرده به اعتبارات قانونی پس این ایش اصال یا مرحوم آیا شما به این این سه مسئله یا چهار مسئله رو یک بخش اصول قرار ده این درست نیست این سه تا مسئله یا چهار تا مسئله وارد یک دیر مجموعه دیگری هم اون باید بخش مسئله در اصول باشه درست انا از اون درست با اون بخش اصول جز در بحث هایی در دنیا مطرح بکنیم احساس فشی هم نداره احساس نداره شما در دانشگاه های حقوق هم میسه این هر آب قانونی کیشون در آن حقوق مطرح است. احساس به وجود آیا ندارد؟ بحث بس است حقوقی استیال زنده است. حیقته وراثت قانونی، انوار وراثت قانونی. هست این کیشون مربوطه به شانسی احساس کردن که باید یک قسمت جدا بشه که دقت که او اصول مدرک فرم یک قسمت جدا شده بوده. چه اصلا رو اونجا آورده این درست نیست، غنی نیست. هم در ایشون در کتاب اهر سنت بعد در کتاب زیدیه که من دارم اصلا همه بحثی داشتی به حکم دارد این بحث اونجا آوردن یعنی اونا احساس کنن که این بحث تابع لفظ نیست این بحث مربوط به سیغه افعل نیست این مربوط بونجه است این یک مطلب که اگر بخواهیم جایگاه این رو با نظر از این مباشر <تصفيق> مباشر کجاست؟ اما یکی چرا ازدهی زیادی از اصولینه مثلا اصولان شیه او قولشون به همه اصول استاد دارد نه این همه اصولان ما مثلا بعد از ما آدم اصولان ما تو بحث الفاظ بودن که اصلا اما ما شون سه نسبانه جدای کرد ایتار بحث چرا اونجا آوردم یه اولا یه نقطه هست اون نقطه رو خوب در قبل فرمانیم اولا این که ببین دوتا نقطه یکی این که علوم اعتباری طبیعتی دارن چون علوم اعتباری هستند از زبایی مختلف قابل بحثن اینطور طور نیست ال از یک جاویه اون علوم حقیقه هستند که زبایی ها پیانه میکنه پس اون چه؟ پس اون نجوم این که پاصله کاره ماه بازمی چقدره چقدره چقدره چقدره چقدره اون که چقدره حجیزه چقدره این عمره تکلیمی چیزه ببودنه اما اینکه مدی یک مسئله ای و در علوم اعتباره نگاه بکنه میشه از لوای های مختلف نگاه کنیم و زاویه شد این یک نکه نکری دوم دو اینکه در یک مسئله اگر میخواد علمی بشه لازم نیست هر نظر خودش در نظر بگیره. مثلا من بگم بحث از استفاب اصولی نیست بحث نکنم چون من اعتقا به این تصااب در شماات می این درست نیست من اقفاب ندارم این درست نیست. این رسمش اینجوریه که میواند استثاب مثلا میکنم یکی اینکه قبول داریم که میگه ندارم اینه که آقایی بینیستم درست نیست یا مرموم ها سین که به اصولی این که ما الفاظ بیارن که من عقیق ندارم اصلا خود این نهوه بحث این درست نیست این باید مطرح بشه شما قبول نکنید اون بحث دیگر نیست شما قبول نکنید، نهی که از این چرا برزن درست اون نکتش نکتهی بباعث الفاظ بودن دو سه نکته که الان نمیتونم توضیح دارم در بحث توضیح دادیم دو سه سال پیش رویا بیشتر شد و تکرارش خیلی فائزه نداره فقط من ارزمه نکته اساسی رو ببین آیایی در مواحث استظهار از لفظ حصولا به یک نکتهی که رسیدن اینه که گاهی اوقات یک لحظه واحد بیش از یک معنا داره ما از یک لب واهد دو معنا میفهمیم. این فهم معنا باز مثلا فرض در یه خطوره به ذهن میکنه این خطور یک چیز یکی دلالته بیش از خطوره این دو تا نقطه دو اون دلالت باز یک چیز. این چی؟ این دلالت برسه اعتباضه اعتباضه قانونی یعنی الزام آور باشه تکلیف برش وارد بشه به بحث می‌کنه این نکته دیگه‌یه دیگه. و علافورد تغییره این سه نکته تا را تن استظهار میشه اوخرا تحلیل میشه و جایگاه خودش رو پیدا میکنه مثلا ببینید شما مفهوم شر مفهوم شر بحثش اینه که مفهوم رو تو معنای در حدیه که تمام تو ملازمات اون باشه ایزی بودن بحث در مفهوم شر اساساً این از که مفهوم شر یا مفهوم منطوق معناش اینه میخوام بگم برای کلام دو تا مدل لول منعقد میشه مثلا اگه گفت اکرم رجل الان این رجل اکرم رجل معلوم رجل معلوم من نه میخوام بگم غیر از اکرم رجل الان یه مفهوم دیگه داره لا اکرم رجل ان غیر عالم این شد مدلول دوبه و اون دوبه دوم آیا فقط خطور به ذهن ما میکنه یه مرحل آیا دلالت این دو مرحله آیا این دلالت در حد قانونی این وقت حصولی در حد قانونی حد قانونی مراد چیه؟ مراد این از که موضوع احکام جزایی بشه این مراد حد قانونی است که اگر انجام ندار عقوبت شده اگر انجام داد، تجریل بره؟ بره بره باز در اینجا به طول کلی این که گفتیم یک نقطه دیگر اینه یک استظهار بکن دیگه بله آما دو معنا فهمیم نکته دوم که آیا این دو معنا چجوری جوری فهمیده شده؟ و رتبه شون چیه دقت برکنه همین که گفت اکرم رجلن آلمان از اون دومی فهمیده شد یا نه این در راسته این دومه مثلا معنی اول اجب اجلاس معنی دوم خفیه آیا این دو معنا طولی یا این دو معنا عرضی در عرض و دقیقه مثلا همین که گفتیم دلالت نگ بر پسا وقتی میگه لاسو سلسل حریف خب این معنیشون اینکه دست چیگه لازمستن نمیشه دست چی بگیره نماز نخو نخو نماز دوله بازه اینجا این آدونی این که این بحث تو ملازم آزوردن گفتن مدلول خود کلام اینه نماز نخو نم. در هر نماز نماز اما این که این نماز اگر خندوی باطنه اینه عقل میگه پس دو مدلول گرفتن یکی حرمت حکم مولویست به اصلاف یکی قصاد که حفظ بردی گفتن مردون کلام یکیه و اون حرمته اما این قصاد رو به رتبندی رو دست بادیم خودشانشون این کسا که مثل آرخوی این بحث نقیه در بحث ملازماتون ما در اونجا عرض کردیم یه تحریر هم از... مرحبه کردیم گفتم نه در... سریع اینه وقتی میگه در حریر نماز نخوان، در آن واحد دو مدوله نه اینکه یک مدول اول بعد دومی ملزمه یک مغلول این است که حرمت تقریفی داره حرمت و حکم مولوی نخوان عقوبت داره یک مغلولیشان که این نماز نیست باصله گفتگو جانو در محل خودش حاضر بی و لذا الان اشاره کردم مبحث دلالت لغی بر قصد در تصور ما جزو ملازمات اصول در کتاب فرهنگ اصول یک ما از یک کلام یک موضوع بفهمیم یا دو یا سه تا یا چهار تا یا پنج تا یکی از کارهایی مهمی که علمای اصول در طی این 1400 سال انجام دادن البته هر سم ها درزیه نره تا 200 سال تو زمین فقه بود از سال‌های 270 تا 80 دی اصول جوش واسه دیروز فهمیده در یه تفاوت نگرفت دقیقه این هزار دیوی سالی که علما آمدن مباحث اصول کردن یکی از مباحث کلیدی اصولی همین بود که ما از یک کلام یک مدلول میفهمیم یا دو مدلول یا سه مدلول یا چهار مدلول این مدلول میرسه به حدی که تکلیف روز رو یا نه دقیقه رو کنه پس این خودش مثلا بحث منطق و محکوم هم چرا مذهب زدرو رو مطرح کردن یا چرا مذهب اصلا مقدمه واجه نقطه لحظش این بود اینا هم بخواستن بگن وقتی گفت برو نام بخر ببینید این بروشش داره نانم هست بخرم از واضح بخواستن بگن این کلام یک مددول داره این برو نام بخر یا این کلام یک مددول دیگری هم داره اون مددولش این است که نماز نخون این برو نام بخر. مثل اگه اینجا اگه زیدون فرهمو این این علمه سر این که بطف... این روشن شد شما یعنی اومدن از این زاویه نگاه کردن بله مرحوم ممکن است که این زاویه ده. درست نیست این فقط یه عقلیه زاویه لعلی این بحث دیگه نیست اصلا یک کسی وقتی عقیده نداشت میتونه عقیده خودش رو جایانه مطرح بکنه اما سر طرح مسئله میخوام بگم طرح مسئله در اصول سرش این بود دقت بحث مقدمه بحث ز عبارت مختاش این بود از بحث هم زاویه هایی هم داره بحث ولی بخواه میگرم نهایت شمینه زبایه دیگه شده اونا نظرشون این بود و این زاویه هم از کجا بود از نظر عرشی بود یعنی اینا میگفتن اگر مثلا مولا به عبدش یا به فسرش رو برو نام بخواه آمدید فسر داره نماز میکنیم خوب دقفه کنیم چی بش؟ میگه؟ میگه میگه نگفتم برو نان بخره کردم تو ذهنش هست برو نان بخره نماز نماز او نماز بوده او به بکن پس اینی که آمدن از این زاویه مطرح کردن نظرشون به ترگه این زاویه این بود که آیا ما از مثل مثل توش توزع در میاریم از توی سله در میارین گروه به نما پیدا بکن تشریف دبله بده تا نماز بکنی از کلمه سله و که حاله که گفت سله از توش در میارین که آن نشین مباعثه بکن گفت نماز بکنم اونش این مباعثه بکنم اونش این درس بکنم نوشتن کتاب نه آتیتاب نماز بکنم پس اینا ها در حقیقت این شد خوب دفت بکنیم زاویه بحث خوب نگاه بکنیم اونی که اینها در اصول اوزن اون سرش این بود که آیا تعدد مدبول هست یا نه تو بحث اجتماع رو خود خوب اونجا نقطه چی بود تو بحث اجتماع رو نه اینا میادن گفتن که گاهی میگه سل نماز بکن بعد گلاس رو سل هر تو هر این نماز هم. خب این ما محکوم و عرفی میفهمیم که اگر در حال هر... تقریبشو گفتیم اینو مخونم تکرار اگر در هر نماز خون هم عقوبت داره هم باطلی الان آن علماءی ما مثلا هم نایینی آزی و مثلا هم آی خوبی اصلاح دارن که نفره دومیه الشادیتی یعنی اگر گفت نماز نخون در حالی نماز باطلی یعنی مانع دیگه تکلیف توش نداره مولویت نداره بعد نوشن خب، شرا پس این بحث مطرح میکنم نهلیات بار پس رفت خودشون میگه شادیه توی که اصلا بحث مولده گیر کرده که اصلا نفهم مطلب چیه راست را هست باراتشون خیلی امهام داره که اینا یک توجه توضیحات تویالی داره و مشکلاتی که اینجا پیدا شد من الان واردشه میشه پس فنابراین دخفت رو کنید این بحث اینجوری بحث دیگر این بود که اول گفت سله اما اگه گفت سلل پس این لا تو سلل فلحری میاد تقیید میزنه میشه صله لا فلحری تقیید میزنه میگه میگن لا صله سلل فلحری اون مطلق این مقاید تقیید میزن این روشن این بحث لفظی است هست بحث مطلق و مقاید بس لفظی نقطه این بود که اگر گفت سلل از اون برم گفت لا تقصر اون دقصر کنه یعنی یه عنوان ریاست طرفی مالغی چون از لحاظ سخت مشکل داره خیلی خدا خب بزرگ طرفی مالغی من نمی‌خوام به خاطر شما نمی اون نکاتی که شده باشه لا طرفی مالغی اون وقت این دو تا دو تا تکلیفه یکی صلاته یکی تصرف در مالغی دو تا تکلیف هم. هر کدومم مطلبه این مطلبه اونم مطلبه این دو تا خیال این دو تا مطلبه هر و مال اشاره بنابرای مشروع از این سوال این بود این دو گاه یو در خارج به هم می رسن خب تو مقام جل نا. تو مقام جل سلاف تصرف در ماره دو سا عنوانه اما تو خارج گاه دهم قد دهن انسان نواز بخونه در دواس پسی در خارج به هم رسیدن حالا که در خارج به هم رسیدن خوب دقت بکنه آیا این منشع میشه که توی لحظ هم بیاد تصرف بکنه یه دفعه تو لفظ به هم میرد او تصرف میکنه ساده ساده هم. پس این که ایشون میفرمان اجتماعان و نه نکته لحظی نداره نقطه عقلیست درسته اشتاقیشان وارد قبول درند یک معنی ایتا توضیح ندرمیان سر این که اونا مزح کردن این بود. حالا چرا اون مح کردن؟ بحث دیگری نیست الان میخوام تمام ریز, ریز کاری های مال را عرضو کنم. این که اونا مطرح میکرد این بود که صله اطلاع داره لاست صفی ماریره اطلاق داره هر دو اطلاق داره. اون جیت من کم میشه این دو تا به هم برسن تو مقام انتصاله تو خارجه ضم در خارج روی به هم میرسه حالا که به هم رسیدن این رسیدن تو مقام خارج تضاد دروش میکنه این منشأ چی میشه که اون مطلق تغییر بخوره دیگه سله لاپی فی موارد غیر خوب دیگه که تحسر و رجعت لحظی بدن چه سر لحظی بودن, بودن بحث اجتماع امر و نه اینه در واقع ایسا بشید نکته این پنیشید اینی که در شبا میاد از یک زاویه دیگه بحث میکنی اینا میان از زاویه الفاظ بحث میکنن و اگر ما بخواهیم تحلیل پنی و دقیق بدیم اون تحلیل پنی اینجوریست که ما بیایم اولا یعنی اگر از من بپرسن چی کار بکنیم بحث مقدم من نظرم اینه که اولا یک بحثی رو مستقلن راجع به حق و حقیقت حق و ترابط بین احکام که یک بحث قانونی باشه رفتی به الفاظ نداره یه بحث مستقلن باز بیاییم تو بحث دوم که در بحث الفاظه ببینیم آیا ما در بحث الفاظ غیر از اون چیزی که در بحث قانونی استفاده کردیم زیادی و کمی داریم؟ یا این طرح بحثی از که من چه خیار می پس انصافش اینه که مساری مثل مقدمه واجه دو نکشه داره یک نکته حقوقی داره یک نکته استظهاری داره حقوقیش باید تو بخش اول بیاد استظهاریش تو بخش دوم تو بحث زواهر بیاد و اون نقطه استظهاریش ممکن ممکنه ما بگیم در حقوقی مقدمه واجب واجب نیست ترابطی نداره، احتوارات قانونی و همدیگه رفتی ندارن, هم ندارن. خاصی اونجا ارائه بود و همینه تو بحث عرفی ببینیم عرف هم همینطوره وقتی به عرف میگه برو نان بخر بری پسرش سرش نماز خون خوب دهفت بکنی نمیگه چرا نماز میشه نمیگه چرا نماز میخونی بش میگه میگه نگفتم برو میگه نگفتم برو نان بخره خب این معنا چی در فهم عرفی توی برو نان بخر خابیده نماز رفت مناش هم میگه این که کاملا پس ممکن است ما در تحلیل قانونی به یک نتیجه برسیم بعد در استظهار و عرفی به نتیجه دیگه رسید این فائده یک یک مسئله در دوباره ممکنم هست ما در بحث قانونی بگیم در بحث استظهار لفظی همون بحث قانونی که گفتیم فرق نمی کنه. چیز خاصی به خاطر لفظ نیست همون بحثی که به طور کلی در باب قانون گفتیم توی از بیشدون چیزی در نمی یاری. پس بنابرایی این که بگیم طرح مسئله تو مباحث الف و و باطله نه چون اینجور مسائل از چند که علوم اعتباری هستند اینها قابل‌تر از زوایای مختلفه و اینجا فقط زاویه نیست چون واقعیت یعنی یکی تحلیل قانونی داره یک نقطه استظهار عرفی داره چون ممکن است ما در عرف اینجور استظهار میکنیم عرف نمیفهمه که امر روشی مختصیه نری از ضد بشه. شاید ببینم مثال اورتگران برام عرض کردم. پس یه تصحج برو نام بخره، نماز میخوره میگه میگه بچ نگفتم برو نام؟ یعنی از برو نام بخرد، تحمیده میشه نماز نخونه. پس بنابراین اینی که استاد پرنده حتما باید توی مواضیع عربی به مطرح بشه. نه توی مواضیع به اصطلاح نه و روشن هم شد تا اینجا که حتی در مقام این است که این مسئله دارای دو حیثیته یک حیثیت قانونی داره و حقوقی داره کاری هم به لفظ نداره این بحث در اعتبارات قانونی و قابل طرح های مختلفی هم هست یک شرش این عرض کردم هم داره من یه طرحی هم دارم مفصلن مفسر اینو ما عرض کردیم یه تری دیگه که شاید بهش بگم این قانونی تره اینه اصولا ما اینجوری بحث بکنیم اگر بین دو عنوان تلازم بود یا تعارض بود با کسر نظر از اعتبار قانونی خوب بحث بکنه کار به قانون نداریم تو اول یا تلازم در وجود دارن یا تعارض سوال اینه اگر آمد یک قانونی به یکی تو کرد این این تا با هم یک تلازم واقعی دارن این مستلزمه که اون اعتبار قانونی به لازمش هم بخوره به دوگو میان بخوره زد او به معاندش بخوره یا نه بحث قانونیست بگیره مثلا نان خریدن و بازار رفتن تلازم داره نان خریدن و نماسوندن تا آنود داره خب دقت مکنی با قطع نظر قانون کار به قانون نداره این دو تا عمل تو تا علمان روشن شد کیفه ده سوال یه حقوقی خیلی عمیق است. هم به اصولاً سوال می‌کنیم در معیار قانون‌گذاری، اگر تلازم بین دو عنوان بود، یکی از این دو عنوان جلب شلغ گرفت، به قضیه ها خب از طبیعتاً تو تفکر میاد. یه تفکر میگه وقتی جلب یکی گره، چون هم لازمه چون هم یه تفکر میگه نه ها جل بگی گرفت چون اون لازمش واقعیه اون بحال خودش نمونه کار نداره اون جل بگی پس اگر جل اون و نان خریدن را جل بو بازار رفتن نرفته به عبارت اخراج جل همیشه به مقداری قانون به مقداری تردق میگه که ابراز شده کار به لوازم و معانداتش نداره خود بگو بکنه چونها واقعی هست کاری با اون نداره اونی که ابراز شده چیه؟ نام داخل. این بقیه ابراز شده. توشی ابراز نشده بار و توش ابراز نشده نخوا. قرآن نخوا. توش ابراز نشده نماز نخوا. پس این یه بحث قانونی. خیلی دارم فکر ما بوچنی تو دارستون. با این بحثی که تا رو بشید. میبینید چون فروره یکی مفصلی خودش عرض کردید. پس اون نکته نو... نو... تنیی که شما الان در دنیا قانون گذاری بسید از تو خود این بختم باز ریشه داره منم واضح ریشه های شده اون ریشه و ریشه های چه پیدا کردن؟ ریشه های این بحث رو پیدا کردن که اگر سوال بین دو عمر دو عنوان تلازم وجودی هست یا تا آنات سوال جد به یکی شعلوه گره؟ آیا طبق قوائد و در قانون و در اندیشه قانونی و در حقوقی همین جل به دیگری هم که ملازم تعلق میگیره یا به این جل به تعلق میگیره یه تفکر میگه برای تعلق میشه موقع کنی این میشه این که امروشه مخصوی نهی از بده یه تفکر هم میگه نمیگیره طبیعت جل یه جوری نیست امور واقعی و تکلینی نیست مثلا اگر آتش یک بیدی هم گرما میاره هم نور میاره پس اگر گرما را دیدیم، فرمی آتش هست نور هم هست میگه این اعتباس قانونی از این قبیل نیست از این تلازمات از این قبیل نیست سنخ اعتبار روشن شد پس این راهی که مرومو استاد مطرح کرد صحیحش این شد که ما بحث و از زاویه قانونی مطرح بکنیم این زاویه قانونی دو همین بحث ممکنه از زایی, زایی استظهار عرفی محرم بکنیم یعنی روشنج رو دیگه. پس این بحثی که من رو مرسا به این که مثلا این تکیبی که شونه بحث جدازانه اولا بحث جدازانه نیست سانگیر این کلمه عقلیه ملازمات عقلیه با این تحبیر ما شد بحث بحث قانونیست و مگر مرادیشون از عقلیه این معنی دیگه باشه و عادتا ملازم به ارحاث قانونی سیر و اغلاییم نه مباحث مباحث عقل نظری که قطعا نیست که از اینجای بحثش اینجا نیست اگر باشه مباحث قطع عملی نیست و به اصطلاح علم حمل به اصطلاح قطع به اصطلاح در عملی عقل عملی به اصطلاح و اون مسائل عقل عملی در اینجا مرار اون به اون چیزی که بر ده به نظام مدون تحبیث سیاست المدون تو سبک و تبییر منزله سیاست مدن این باید برگشتش بشه به عقل عملی در سیاست مدن و امیده ما اینه که در عقل عملی در سیاست مدن لازم نیست احکام قطعی عقل عملی اجرا بشه طبیعت سیاست مدن طبیعت سیار و اغلائیه. یک نوع تسامحاتی رو بر داره برای حفظ نظام که ممکنه توی احکام عقل عملی صرف اونها نشه این توضیحات شده فکرات نمی کنه. پس این تعبیری ایشان که اسمی کنه الملازمات اینا عقلی نیستن قانونی هن. و این ملازمات قانونی سیر و هستند هستن عقل نظری که قطعا نیستن عقل عملی که مربوط به سیاست مدونه نه عقل عملی مثل حسن و اونها اصلا از, از اون قسم عقل عملی نیست در سیاست مدون ارجاح بسیار عقلاوی است در سیرا و ممکنه ممکن بعضی از ها قبول بشه در احکام عقلی عملی صرف اونها قبول نمیشه قبول قبول نیست اون تا احراض موضوع به جمعی خصوصیت نکنه قبول نمیکنه. این چه قوله است وقتی میگن شونش ملازمات عقلیه غیر مستقله و مرادشون همین نکته اینه صحیح هست اینکه اینا ملازمات قانونی اسمش بشه و اصحهش اینه که بگیم بحث این در قانون در ترابط بین اعتبارات قانونی ترابط که هم شامل تانوت بشه هم شامل تلازم بشه <تصفيق> اون بحث و کبرمی اینه نه این اسمش رو زن. و اما این کیشون ایشون که یوج بلغت الوجدانی ظاهر عبارتی ایشان مثلا مشهره اینه که اگر این ملازمه باشه یا نباشه اگر واقعی تکنیز اصول مسیکی یا زمین دور خورشید می یا خورشید دور زمین امر واقع این مال به شیده مثلا اگه اتفاق این خورشید بگرده واقع عوض میشه اتفاق کاری این نیست این مطلب کیتون فروندن از ایجداری نیست خصوصا در سیاره اوقلایه مخصوصا در سیاره اوقلایه در قانون کلام دائر مدار حجت و تعبد حجت منجزه نه دار مدار واقع این مشکل دیگری در کلمات اعلام نمی آمده در سیر اقلائی قانونیه کلام سر منجز و حجته نه کلام ایشون مثلا ای ملازم واقعی نه این ملازم واقعیه نیست کمان که سیر اقلائیه به حسب نظام اجتماعی و نظام اجتماعی هم به حسب مقدمات مثلا تمدن، فرهنگ، خصوصیات فهم میکنه ممکن است حتی در یک نظام اجتماعی قرض هم حجت نباشه البته الان سوی نظام اجتماعی که تا حالا بشر قرض خود شد در یک جامعه محدود در یک شهر محدود امکانات هست هر نظامی هر قانون به بار 6 بار 7 بار 8 بار به مجلس مراجعه کنه به استاذ با سایت که دارن مراجعه کنه اصلا مستقیمن گلسه مجلس تا اونجا نمیشه. و تاکید شدید بکنه تا او با باقی در بیا این که حجت عقلی گرفتن از کرد اینا عقلی نیستن اینا جزسیه و اوغلایی هستن و سیه و اوغلایی هم فرق میکنه تو همین مسئله ز الان من فقط چون وقت تمام شدشه ولی شد. اشاره بکنم و دیگه وقتو تمام کنم همین مساله ز ما از کردی بحث این ملازمات در اینجا اون ملازمات تکوینی نیست مثل آتش و حرارت این ملاحظات بیشتر تسانوخات قانونی هست سمتریت های قانونی ما در همین مقدمه واجب توضیح شده اگر ما نظام مثلا پسیل شرعی رو مثل روایات چون محل کلام ها تسکیه آیات و در بحث قانونی اگر ما آیات و روایات و قانون رو و هفت رو در شریعت مقدسه تفسیر به راقصه عبید و مولا بکنی موالی بکنی یعنی چی مثلا اجمالت یعنی مثلا یا ایواللزین آمن و عقیم و سلام در زمان تقیقن چون نظام عبید و موالی جاری بود که انما یک مولای صد تا عبدش جمع بکنه بکنه که شما هر دونون یک دل و آب بیارید یا ایواللزین آمنو مثل و سلام اگر ما این جور فهمیم ما اصول شریعت و تقدر جامعه‌ای که اون زمان بود معنا بکنین بگیم خطاب فیرا به امتی و ای الذین آمنو مثل نظام خطاب یک مولا به صف عذب بشه به هزار تا عذب اگر این جور بفهمیم، دقتو هر اینه که مقدمه واجب واجبه امر بشه مختصری نهی از او بشه اون نظام خالصی که سنخی... ملازمه در اینجا ملازمه تکینی نیست سنخیت قانون شما مسابقتا هست و اما اگر ما الان بیایم رو اجلذینامون رو تو پرهنگ امروز ما در قانون اونی که الان در دنیای قانون مطرحه تو دنیای قانون دیگه بحث نظام عبید و موالی مطرح نیست مجلس رو انعکاس اراده ملت قانونگذار رو همون خود مردم میذارن بحث عبد و مولا و اینها مطرح نیست یک نظام اجتماعی است بحث یک به اصطلاح تکامل اجتماعی، صلاح اجتماعی، مصالح اجتماعی و خود این اجتماع داره تصمیم می‌گیره. کسی دیگه عرض به این مولا این نظریه این خودی شکل نظریه قانون‌گذاری است که اصل در اروپا بر دوران سانس و سیتا روح القوانین، آره نگفت که روح القوانین برای اول کارش یه قوه چون 200 سال قبل اون مشخص شده این اولین کلنگوار و اصطلاح روز برای رو آوردن به روح قانونی دیگه تو روح قانونی رفیده یا ایوه هل از اینا کتاب مولا به عبید میهین این کتاب ولو از مولای حقیقیست اما بحث مولا و عبدیست از پر میگه روحات سیگر داریم چند داری گذاشت اوز مخوند داره. به اماموزا میگه مردم چی میگن میگن که میگه که مردم ش... مردم عبیدن شما مولای این یعنی باعث که شما بخواید بعد امام اینا ما مولا هستیم نه حقه ثا یعنی باید هر رو گوش بکنه ده این که مولای بودن معنای لازم است که مردم و مؤذنین هر دو رو گوش بکنن پس بیاین بگیم یا یک خطاب به جامعه اسلامی اوی و مولا هست فرض عبد بعد مولای خطاب از مولای حریص شده اما فرهنگ فرهنگ قانونیه حالا این دو تا فرهنگ رو تفسیر کردن و لوازم اگر اینطور باشه که این مقدمه واجب واجب نیست حت این این دو تا یعنی ما تفسیرمون این ملازمه کلمه ملازمه که استاد اون ما معتقد این مصانه هست نه ملازمه هر نظام قانونی یک لوازم خود این نظام قانونی مثلا معموم نایمی قائل به انحلاله یا اگر از این آمنون به حساب افراد منحل بشه. مثلا بعضی از این بزرگان ما ما قائل به انحلال نیستن به قول خوشون قائل به حتاب قانونی هستن راست این هم از سوائزشه چون اگر ولیتا اونجا توضیح دادیم اگر ما نصورت شریعت رو خب تا هزار از زمان پیغمبرکم تا هزار سال روابط عبد مولا برقرار بود اخرین تو معادل وقتی نمیشه و آیون هم همینوشن میگه اگر مولا به درگاه از این وجود فهمیده میشه ایشون تبیین میکنه که این وجود به خاطر رابطه عبد مولا است از خود لفظ در نمیاد از رابطه عبد در درک میکنید ما این توضیح ها رو خیلی طولانی مفصل هستند دیگه تکرار نمیکنیم پس بنابر این کلمه عقلیه که در این جورشون اوردن و دیگران روشن نیست ملازمه که اوردن این ملازمشون اشتباه میشه با ملازمه تکمینی مراد از ملازمه در اینجا مصانه هست نه ملازمه سنخیته اونی که مناسب از با نظام عبد و مولا موجود محدده هست حرمت زد. اونی که ملا... مناسب از با نظام قانونی با خطابات قانونی که الان متعارفه که بحث عبد مولا نیست و مثلا مولویت توش هست اما نه رابطه عبد و مولا چون من تو اجازه شه صابر هست یعنی میخوام تکرار کنم پس تناوریم این تا اینجا روشن رو شد که در مطلبی رو که مرحوم استاد به عنوان قصه اول مطرح کرد، ال از اشکالات فراوان وجود داره. ولی اینکه فرمودن لفظی نمیشه چرا قابل طرح لفظی هست؟ بله ما وقتی طرح لفظی کردیم مثلا میگیم در جانب لفظی چیز تازه ای هر کی در تحلیل قانون در لفظی هم کافیه. دیگه به خاطر لحظ چیز تازهی به نمیاد و سالالله الله علا محمد